در پنده سر سر داستان گمبت سیاه بحرام رو گفتم یه مقداری هم باجه به مطلب خود حق که کتاب اصلا گفتم رسید به قصه قصرم هم خوندم همش که شنیدی که پادچاهی بود و سیاه پوش بود و بعد تمام عمر سیاه می پوشید و این پادچاه یه روزی به کنیزش سر بودش رو گفته بود که چطور شد من سیاه پوشیدم و کنیز هم بعد از اینکه پادشاه مرده بود این رو برای جماعتی نقل کرده بود و این به این صورت قسطه و کم متأسفم بیش کسی هست که قسطه رو نخونده حالا امیدوارم که سیر کلام حال دستش بیاد قسطه بارد از این بود که میره این پادشاه ها دنبال این که بینه که میگن شهریست همه مردم سیاه پوشن. هر کی بره در اون شهر اون هم سیاه پوش میشه میره ببینه که چرا این مردم سیاه پوشن و بعد کسی جوابش نمیده تا یه قصه بیره بده میکنه و قصه میگه که قصه خلاصه به دامش میگه و خوبی میکنه و محبت میکنه تا وقتی که فکر میکنه که این دیگه جوابش میده بعدشو میپرسه که این مردم چرا سیاه پوشن بعد قصه خیلی سخت ناراحت میشه و بالاخره میگه که خیلی خوب خوب خوب. و صلاح نبود می‌سوال از من بکنید ولی حالا که کردی من جواب تو می شب میشه میرم بیرونو میره و این توی سبدی و می‌نشستهش با آسمون و بعد می‌ذره میره می‌ذره میره و بعد دیگه که ما بالا دیگه نیم مرگ بود تا صبح مرگ مرغ مرغ عظیم الجلسی میاد اون بالا میشینه و این بعد که مرغ میخواد بره دستش میگیره و میره توی سرزمینی و اونجا سرزمین ایدئال یعنی یه چیزی یه تصوری از بهشتی که ما الان داریم یا لاقل ما حالا یه خورده توقع والا رفته ممکنه بذاره فکر کنیم ولی مردم ساده بهش دو جایی میگیرند که هواش خوب باشه، آبش خوب باشه، سبده خوب داشته باشه، غذا خوب باشه یعنی من زمانی خوشکل داشته باشه، ساز باشه، زرد باشه، سفره باشه نمی من همه چی باشه این باب میره به یه همچی جایی و بعد این مسائلم در حضورش بوده و یه خانومی که رئیس کل اینا بوده آقا بلا فاصله گلوش میشه خانوم گیر میکنه خانوم میگه آقا یه صرف صبر بده تو حالا اگر که ناراحتی حال اینجا خیلی هستن من شب میگم هر کدوم اینا که میخواد بیاد ببره پذیرایی کنه عروسی بکنه پرستاری بکنه تو برسه و یه خود سب بکن اگه میخوای به من برسی یه کمی طول داره اینا پلاسه کلام آقا سی شب نیمونه و شب چهلون میچست به خانومه که نه من بعد از دولات وسال تو کامیاب بشه می رو بشه می خانم دست من واش حالا آدمی که روز اول شب اولی اومده جرعت نمی بیاد پلو خانم بشینه وایستده بوده اون کنار خانم میگه بفرمین آقا بشینین شما مهمونین شما عزیز منی میارش راوش می ده. بوسه بهش میده میگه چون که برگنج بوسه بارم داد من یکی خواستم هزارم داد و چه و چه و چه بعد همین خانومو به جای میرسه که میگه این خانوم دست منو ماچ کرد گفت این دست تا این جایی ممنون خواهش من ورداشت بعد میگه که همین امشب و سبر کن صبر کردن شبی محالی نیست آخر امشب است سالی نیست امشبی بر امید گنج بساز صبح فردا خزیمه میفرداست به گوشش بود میگه چسبیدم و رومو زیاد کردم و هیچور بلکن معامله نبودم وقتی که طرف دید که نه من خلاصه سماجت هم از حد گذاشت گفت خیلو خوب چشم هم بذار تا من آماده بشم من به شیرینی بحانه او دیده بر از فسانه او یک لحظه چیز کردم و یک لحظه چشم هم گذاشتم گفت بکش های دیده بکشودم چون که سوی عروس خود دیدم پیشن را دارم سبت دیدم یا وقت چشم هم وای کردم خانم را بگیرم در کنار دیدن تو سبه و درست در اون لحظه آخرین لحظه که خودش در قونج کامرانی میدیده و به منتهای های مقصدش یعنی به آخرین حد مقصدش میخواست برسه وقتیش شعز میکنه نیکن نیست و اون وقت میاد و بر فوق آرزوهای از دست رفته از بین رفته سیاه تا آخر عمرش سیام حالا این داستان رو طبیعیست داستانه ولی نکته های متعدد داره که شایسته اینه که کنجوش تعمل کنیم و فرقش با قصه حسین کرد همینه که تو قصه حسین کرد این قبیل نکات قابل تعمل نیست ولی تو روستم و هست تو رستم و اسفندیار این نکات هست تو داستان سیاوش هست تو قصه نظامی هست اولش میگه که مردی رو دید بابا اولا حس کنچکاوی بشر که پادشاه شدد مرد که بعد مهموخونه درست کرده بود و قربایی که میمدن اینجا مینشوند و شموناه ها رو شمو میداد و پذیرایی میکرد و بعد گفت که از عجایبی که دیدیم برای ما این معنیش که بعد از ارزای احتیاجات مادی و که خوردن و و یعنی مسکن و لباس و براکه و بعد هم ارزای حس جنسی اینا احتیاجات مادیست یعنی که با هیون آدم شریک بلا فاصله اولین احتیاج که یلان ما هیون شریک زیر ارض احتفنجکاپی که در عوام و ناس به صورت فوزولی تجلی میکنه چون این, این زنی که بر شوهرش شک تو ده میری مثلا این 20 تا خونهواره تمام صحبت که دیشب او یار کلقولی با زنش دعوا کرده بود زنش هم اشتباهو شور کرده بود اینه که اویار کلگولی با دیارو زد تو سرش و با خاک برسد منیشه. و سردر آوردن از کار دیگری که چیزو مهمی همی نیست و این گاسیب که الان میگن همینه درست که کی چجوری کرده کی با کی چکار چپار کرده کی با کی رابطش بعدی کی با کی رابطش خوبه اینا به عنوان خبر روز شاید یه, یه سر سرسوزن و حس کنشافه ارزا کن در حقیقت چی نیست همین حس صورت تعالی پیدا کرده و صورت اسطلاح تکمیل شدهش حسی است که علما و بزرگان دارن برای اکتشافات این همه کشفیات علمی، ادبی، تاریخی و سایر مسائل که به وجود آمده نتیجه تربیت همون حس بحشی کنچکاویست به که به جای که دنبال این بکنی که بینه که همسای زن همسای با شواریش شکاه کرد من نمیره مرد که جوری کردی نه میره دنبال مطلبی که مسئله برای همه افراد بشه و نمیدونه میره دنبالی آقای پاچام هم این حسی داشت برای ارضا این حس کنچکافی مهموخونهی درست کرد بود ترتیباتی درست کرده بود و دونه دونه یه افراد رو و میگفتش که شما چی دیدین، چیز عجیب چی دیدین، نه برای من بگین و میگفتن بعد میگه یه سیاپوشی آمد از همین جا داستان از همینجه میشه که به این سیاپوش گفت، آقا تو چرا رو سیاپوشی؟ گوه نمیگه سر مگمو بله هره میگه اصرار و اصرار و اصرار بلاخره گفت شهریست در ولایت چین شهری ها راسته چپلده برین هرکز آن شهر نوش کند آن سواد سیاه بشه گر به خون گردنم به خواهی صفت پیشتر زیند سخن نخواهید این سخن گفت بار برخرب است آرزوی مرا در اندر برست بعد پاچام که باز این حالت رویه بشرت قادشه هم میگه که قسطگو رفت و قسط ناخیده بیم آن بود که من شوام شیده میگه داشتم دیوانه میشدم از اینکه نمیدونستم که چرا این مرکز سیاه این حس کنچکا بیچ کار میکنه که میگه نظریک بود من دیوانه بشم برای اینکه نمیدونستم این مرکه چه سیاه خوش مملکت رها کرده قادشه شده چی از خانه باطرا کردم با شدم رفتم راه دور و دراز و اون شهر که ببینم که قضیه چی اولا این حس خنجر بعد میرسم اونجا اسمت منت دو خنجر یعنی تا اینجا صحبت این حس وحشتناک خنجر کافی است که باعث میشه پادشاهی منبکت و ادنرانی و عزت و حرمت و رها بکنه که بعدم میگه که میگه که وقتی که اون قانون پرسیزی تو کی هستی کی هستی گفتم که چطور شد من منبکت رها کردم دست بر پادشاهی افشاندم چه کردم پادشاهی که بچه شمی کشته شعباز و کشتن ناسته میشهد این که واسه مأدهش داد کور کردن برای نگهداری پادشاه خودش این دل می‌کنه برای اینکه بره ببینه که این شهر چه مرزام سیاخ من باز جل اومد اومد اونجا باز یه نکته بسیار جالب اینه که میگه که دیدم همه این شهر صحب. شهری شهریا راست چه پرده بارین مردمانی همه به صورت ماه، یا به صورت ماه همه چون ماه در پرند نیسی دارد همامشون یعنی چی؟ این معنیش اینه که اون بلایی که به سر این پادشاه آمده که بعد جزیزیاتو گفته به سر یکیه که اینا آمده یعنی همه دونه دونه تو این سبت همه رفتن اون بالا، رفتن اونجا و همه حاضر نشدن آخرین محلت الیک شب اولی شب چهارون میکشب منجوم میکشب دهم ولی همه حاضر نشدن که تا اون اندازه که لازمه برای اون محلت صبر بکنن و همه محروم برگشتن دست رد بسیدیشون پانوارین این کار این مطلب که اونجا به عنوان وسال اون پانون زیبا مطرح میشه این چیزیست که یعنی است که تمام افراد با وقتی در برابر اون میرسن ازش محروم برمیگردن و همجورت میعرض کردم یکی یه خود زوبتر یه شبه دیرتر یعنی الان به فرض به ذهنمون اگه فکر بکنیم میتونیم بگیم که خب ممکنه تمام حد شهر شب و یا سی شبو شب و سب نکردن یکی شب سه بوم این شب ده هم شب ده هم بعدشون کرده و این پادشاه تناکس بودی تجربهش برای ما میگه که خانوم بهش گفته که آه امشب و سب کن همین امشب و. و فردا کار بر مورد حاضر مشون. این پس دو خمی مطلبی که بسیاری از مردم یعنی تقریباً تمام مردم در راهی که برای رسیدن به کام و مراد هست قدم خدم برمیدارن تقریباً همه این راه رو به پایان نمیرسون و همه هر کدوم به یه دلیلی از اون وسط راه منحرف میشن یا شاهد مقصود اینا رو رد میدن آخرینیش این است که سر روزش این دو است که تمام افراد این شرسی ها پوشن. یعنی تمام اینا این تجربه رو کردن یعنی تمام اینا در برابر مرادی و مقصدی رسیدن یه قدری صبر به یه قدری پافشاری و یه قدری چه میدونن نشون دادن صداقت یا هر چیزی دیگه احتیاج داشته و اینا نشون ندادن و در ناچه به آلشون نرسن ناکسته که خب این چیه؟ یعنی این مطلبی که اونجا به صورت اون رسال اون زن زیبا چیز شده که میگه, میگه گروه گروه به خیل خیل زنان زیبا بوده اگر ناراحتی، اگر شهرت به تو زور آورده، اگر گرفتاری داری زین،, زین حریفان که هر یکی ماهی شب عشاق را است، حجم کن که از خودش کنم حالی زیر حجم تاورم آیی تا به دلداریت کمر بندد چه بکنم؟ چه بکند؟ کندت از مشتفین یا دلداری هم عروسی یا هم پرستار بعد میگه که اگر فکر میکنی که حالا این یکی دلتو زده بگو یک دیگه بدم اون یک دیگه هم گو یک دیگه بدم هرچی میخوای بدم میگه نه فقط اونی که دست بهش نمیرسه من اونو میخوام بهشم میگم میگه که هرچه نمیدم خواهی تو من منت خوامست جز یکی آرزو که آن خوامست این درست دامال هم، دامال همون که نمیشه این در حقیقت مسئله یه رابطه بین زمین مرد که غالبا سهل وصولم ها است و اکثریت مردها و اکثریت زنان و هر حال روش میرسن نیست مطلب اساسی این حس ابزون طلبی بشر که اینی که هست نیسانی که یه هم کشب اول بودش در اختیار بابا همون کار رو انجام میداد که اون دومی دومی همون که سه بومی همون که چهارمی الاخر بگم اون که چیزی اضافه در جان نداشته ولی این افزون تلبی بشر که میاد یه ای رو تجربه میکنه به جایی میرسه یعنی از کودکی به خاطر دارم فکر کردم که این تحصیل شیش ابتدایی رو بگیریم تو ما هم برای بود ساله ازار یک چیزی بود برای خودش تصدیق همو بگیریم، تصدیق گرفتیم نیم ساعت بعد یادمون رفت که از تصدیق اول را بود دواره بذارم کراسته اول متوسط بعد گفتیم دیپلوم بگیریم بعد گفتیم لیسانس بگیریم بعد گفتیم دکترا بگیریم بعد گفتیم استاد بشیم یکی یکی رو رفتیم گفت یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خودشاهد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید؟ از خاک برا و بر بار این است که این درست خبیلی مسئله افزون تلبی و آرزو خواهی بشره که هر آرزویر که بهش میرسه و تکمون قایت مخصودش اینجاست وقتی رسیدیم این نه اون نبود میره دنبال اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی بلغه همه مثل افراد اون شهر چین که یکا یک در برابر این تجربه قرار گرفتن و هیچ کدوم به اون نرسیدن و برگشتن و سیاه پوش شدن زدم اینقدر در این هفتون تلویزیش جلو میره میره میره و هیچ نمیدونه کجا رفته و نمیدونه که کی بوده چند جا نظامی توش اشاره میکنه تو این داستان که من چه خریعتی کردم من چطور نفهمیدم من چطور قدر این ماجر رو ندونستم من به کمی افتادم از بیشی چرا این زیادت تردیل کنم ولی خب وقتی آدم در جریان اون کاره این نفهمند جون میره تا یه وقتی چش رو هم کنه در ثبت محلی یه حدیثی داریم دقیقاً نمیدونم حدیثه نمیدونم مسئله به صورت حدیث در اومده به هر حال نکته بسیار جالب است میگه ان ناس نیام از ما تو انتبه مردم خفتهگان وقتی مردنfidarin مردم خواب به من اینکه مردن تازه بیداره میشه. درست مثل بابا اکنون سبت و بعد میگه که اون مرد غصابی آمد گفت اگر من هزار بار میخواستم به تو بگم که چه بر سر من آمده که اون جامعه زیافه تنانه تو که باور نمیکرد مگر اینکه خودت بری و خودت با چشم خودت ببینی و سرت به سنگ بخوره و برگردی و بعد مرد برمیگرده میخواسته به این به یه بره یه لباس سیاه بیار که منم ترم کنم اینه که لباس سیاه رو قبلرم نه میگیره پرنتر این قصه از این زهاز قصه آرزوهای پایان نافذیره و که به هر جام میرسه باز دنبال زیادتریشه که این مار قاشی هست. یعنی که در جهنم یه ماری هست میگوند مار قاشیه قاشیه از قشاه هایه یعنی پوشش مار قاشی میگن ماری است که تمام جهنم پوشکم اینه حسن. یعنی پوشش روی به قول شما جهنم رو کاغر می <تصفيق> بعد میگه که روز قیامت هی میریزند تا هنه این بعد میگن حلم تا پر شدی ها یکولو حلم مزید میگه بازم هست؟ باز همین تصبر مارقاشیه تصبر این چشم پر نشدنی آدمی دیده ی اهل تمه به نعمت دنیا پر نشود همچنان که چاه به شفنم اگه چا باشه اب نمیتونی پرکنی از رسیدن به مراد و مختلفم مختلف هم میتونی آدمیزاد و این چشم آرز و چشم هفتون طلبی شو سیر کنه. که نمیشه من کنم که <تصحیح> خیلی حرف زدم حالا یه شفیه هم بکنم یه سری بود نقی و سادات سری بی سواده چیزی البته, البته بعد پسرش که من دیدم مثلا من هفت سالم بود این پیسرش 90 سالش شد. جد این صادات آستاشمی و خانواده آستاشمی تو زمین. جواد حسین یکی از اجداد اینا برادر سادات معروف بود، همین حسین سادات. نقیب سادات آدم بیسوادی بود و ولی خب ساز چیرازی بود و صدای خوش داشتن و اینا همه روی روزه می‌خوندن و تا چهار تا سواد و تو دستگاه موسیقی و بعدم فهمیدن روزه خوندن این سید باید که بخواست روزه بخونیم میخواست احسار فضلی هم بکنه دیگه شنیده بوده که ماری هست در جهنم به نمار آشیه بعد یاش میده یه سوره دیگری هم در قرآن هم سوره علم نشرح علم نشره اصلا خطاب پیغمبر اکرم اصلا کتاب این سوره کتا هیست خطاب پیغمبر اکرم بسم الله الرحمن الرحیم علم نشره لکه صدرک یعنی آیا ما سینه تو رو گشاده نکردیم و رفعنا لکه ذکرک و یاد تو رو ذکر تو رو در بین مردم بالا نبردیم و وزعنا انکه ذکر وزرک و گناه تو رو از تو جدا نکردیم پایین نیبردیم الازی انغزه زهرک گناهی که پشت تو رو ش... چه کسته بود، چه چه سوره مال کتاب پیغم برد. سید نمیم سادت میرم، برو برای، میخواد حرف بزنیم، میگه که برای روز آشورا هم هست دیگه آقا. میگه که بله روز قیامت ارز کنم که قتله جد من رو میارم در برابر عزت عهد دیگر، قاتل امام بعد یه ماری هست در جهنم اسم ماریاش میگه اسمش مار علم نشره <تصفيق> جای مار قاشیه میگه که اسمش مار علم نشره وقتی که قاتلای جد منو میارن میگه که از خداوند تبارک و تعالی خطاب میره که علم نشرح لکه صدرک معنیش اینه که مگه ما،, ما, ما سینه تو رو گشام میگه یعنی این که به مار عالم نشه خداوند خطاب میکنیم میگه این مار عالم نشه بزن فینشو فاص فاص چه بزن گداشو بعد مار عالم نشه میگه خدایا چجوری جوری بزنن میگه این قزه زهره من عرض کنم که خلاصه قصه داستان گنبد سیاه داستان این آرزوهای پایان نافذیره و این رو ازامی واقعا با استادی بینزیری ترتیب داده شرخون ساده است خیلی مشکل نیست ما چیز می کنیم نسبتا به صورت از در هر صورت یکی از بهترین افسانه های یکی بهترین بهترین های هاییست که در عدب فارسی دید. و از نحاظ جزم و جفه بودن یعنی یک کلمه حرف زیادی نداره تیهیم. و تمام عوامل داستان تمام به اسطلاح سحنه های داستان درست همونقدی که باید باشه نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر آمده و هفکر به خصوص این هفته داستان همش به همین ترتیبه یعنی همه به همین خوبی است از همه بهترین داستان گومباتی ها امیدوارم که داستان گومد رو در این ترک تموم بکنیم و احیانا یکی یا دو تا داستان دیگر را هم ازش بتونیم بخونیم. هر حال حالا دسته این که اینا مربوط هر کدوم به چه روزیه، این روستا به چی مربوطه، نه اون سایر مسائل که من یه مقداری هم در جلسه میشه حرف زدم. این ناصرخان گل، به جای ناصرخان پل، این عشبشت و حف این رساله ونده رو فوتوکوفی کردن از مجلی ایران نامه و اینجا هست یه نسخه هم کردن، به بنده دادن نظری ولی خب برای دوستان یه ذره نیاز داره دو چوبه بازرگانی باید کار سازید فرمین اینه اطلاعات مربوطی به حف رو عرض که رنگ های مختلفش و سیاره های مختلف و سایر مسائل مطالب خیلی زیادی راشیب مطلب بنده اونجا نوشتم که اونا رو بعد از ذرتون میگذارم دیگه اینکه بهران بحران روز شنبه در گمبت سیاه و در انگلسی شنبه رو میگم ساعتش دایی دیگه روز زحل و رنگ سیاه منصوب زوحله و سر و از میون فرزات منصوب زحله. اینا این مسائل رو اونجا بحث کردند. یا حالا اینجا من زیاد دنبالش نمید میگه چون که بحرام شد نشاط پرست دیده در نقش هفت بکربست روز شنبه زده دیر خیمه زد در فواد عباس عباسی عباسیان شعارشون شعار یعنی لباس رو بهسار یعنی لباس زیر شعار یعنی لباس رو و این که الان میگن که شعار میدن مثلا فرض کنید که نشرقی نقربی نمیدونم دموری اسلامی این شعاره شعار یعنی اگه بخواید چهار تا کلمه یعنی اولی کلماتی که اسمتون به نظرتون در باب این مطلب این باشه این میگن شعار نشرقی نقربی بله گفتن که یه کسی هم ساخته بودن نظاهرات میکردن استاد گفتن که لا, ش... لا برقی یا لا غربی یا لا شرقی یا نه آبی یا نه برقی <تصفح> هر <آه، ها خلی. تصفح> برحال از این میگن شعار شعار رو این لباس روی یعنی اولین چیزی که آدم فوراً به ازش میشه لباس عباسیان شعار عباسیان جامعه روی عباسیان سیاه و همین دلیل میگه که روز شنبه از دیر شمماسی در ضمن شماس اسم اسم روهانیار دین مانی هم بوده که اینا پرستش نور رو اینا داشتن و مربوط به شمس و الان در نواحی شرقی در ماوراء شرق شماس یکی از درجات دین مسیتی شماسی که از سایه کیش روز شنبه دیر شماسی شنب خیمه زد در سواد یا در دیار عباسی سوی گمبت سرای خالی خام گرد سیاه رنگ بسیار خوشبویی بوده که از مشک و یه مقداری مواد درست میکردن و به صورت عطر به کار میبردن چون اون روزا که عطر سنتیتیک عطر, عطر خارکونهی که نبود عطر طبیعی و این گرد سیاه رو خانمها در گیسوشون و آقایون که به خلاف حالا محاسم داشتن و ریش داشتن و ریشون مثل ریشونده سفید نبود هنها میبوستن و رنگ میبوستن و خضاق میکنن. سیاه باشد ریش سیاه گرد قالیه رو هم برای به کار می‌برد. سوی سرای قالیه خام یعنی سیاه رنگ پیش بانول هند شد به سلام هند منصوب به اقلیم اوله و راجمم این ااقلی ها من حرف نزدن و نمیزنم برای اینکه دقیقا هم معلومه معلوم تو کتاب های جغرافی قدیم رب مسکوول رو یعنی خشگاه روز و رو هفت اقلیم تقسیم میکردن. ولی این هفت اقلیم دقیقا در همین کتابا یه جور نیست. بنابراین از منم نخوان که اینجا براتون بگم. ولی همین مال مال نظامی الان اقلیم اول میگه هنده. ولیزی می‌فهمیم سوی گمبترهای خواهر غ... باقیش هم هفته دیگرم چشنگرم دیگر می‌گرد سوی گمبترهای غالیفان پیش بانوی هند شد شاهزاده خانم هندی به سلام تا شب آنجا نشات و بازی کرد اود سوزی و اتر سازی کرد اودم که دیدید دابد لازم از پوزید چون برفشان شب به سنت شاه بر حریب سپید مشک سیاه شب سفیدی رو کم کم تبدیل سیاه می مثل این که روی هر سکید ماشک سیاه بپاشن که کم کم سیاه بشه شاه از اون کشمیری خواست بویی چو باد شبگیری شبگیر یعنی سهر شبگیر صبح صبحی که هنوز هوا تاریکه بشه بین شب. یعنی همون پس از اول صبح شبگیری یعنی صبح و باد شبگیری که میگه برای این است که خودما معتقدان آگه درست هم هست که تمام گلها درست در اون لحظه که نسیم سهری این باد میشه و عطر اینا وسیله باد سهرگاهان پراهد کنده میشه این است که میگه که شاه از آن نقبه هار کشمیری خواست بودی چه باد شبگیری تازه درج درژ در... در... این صندقچه چیزهای کچیکی صندقچه های ماله مال جواهرات و مرواری دنهای که میداشتن اون رو فکران درژ تازه درژ گوهر گوشایات قند گوگدش مادگانه یعنی زنانه لفظیتان زن فسانه که لب پراخت کنه. یعنی دهن آدم آب بینیزه مست را آرزوی خواب کنن معمولاً بچه های کچیک مثل مست، آدم مست دیونه بوده. زنان موسن خانواده میشینن و قصه میگن برای اینا و اینا به شیرینی اون قصه کم کم به خواب میدن مست هم دنبال افثانه است، و یه چیزی داره خیلی ببخشنه خانواده ما بگذاره کمی از خود دوره میگه که یه مردی پلاوه مدیم اون خابیده بود و سید رضییدین برای سریف بود گفت چیزی بگوی تامان من بخواسمم این سید رضیدین یه مدتی هر صد هر صد هر صد یارون خوابش نمی‌برد خود سید رضیدین چرتش بود باز دوباره گفت چیزی بگوی تا من بخواسمم سید رضیدین آقاحش تعق شد گفت تو گوه من خور چیزی من گوی تا من بخواسمم <تصفيق> که از آن فسانه که لب خراب کند مست و آرزوی خواب کند آهوی ترک چشم هندوزاد نافع مشک را گره بگشد یعنی قصه بسیار پر رنگ و بو و پر محنای را شروع کرد گفت از اول که پنج نوبت شاه باد بالای چار بالش ماه چار بالش حالا مبلایی که هست ونهال یعنی ببینید چهار تا بالش ده اینکه پشت دو تا دو طرف چپ و راست یک کم زیرهش چهار تا این چهار بالش یعنی سندلی راحتی درایی که چهار طرفش زیرو چپ و راست و پشت بالش هست این چهار بالش پنج نوبت ببین پنج تا مهاد داریم و رسم امیری و فرمون روایی موزه که در امیر در این پنجوبت نماز ناقاره می زدن توست و کرما اینا می که مردم می بیام بیان برن برای نماز اینو می نوبت زدن و اون شخص رو می نوبتی کسی که می زده سعدی می گه سعدیا نوبتی امشب دو حال صبح نکوفت یا مگر روز نباشر چه به یا یه جای دیگه میگه که این نفس اگر به دیده تحقیق رنگری درویشی اختیار کنی بر توانگری گر پنج نوبتت به در قصر میزنن نوبت به دیگری به گذاری بزن یعنی اگه پادشاه هم هستی، بالاخره اگر اینه که پنج نوبت شاه، یعنی پادشاهیش، فرمون رواییش تا وقتی که در خونهش پنج نوبت میزنن گفت از اول که پنج نقط شاه باد بالای چاربالش ماه ماه طولالی باشیم تا جهان ممکن است جانش باد وجود میگن دو قسم اصطلاح فلسطیست ممکن میگن بعضی یا ممکن الوجود هن. موجودات ممکن الوجود هن. ممکن وجود یعنی ممکن باشه و ممکن نباشه مثل همه ماها مثل این کره زمین این روزی هزاران کره مثل کره زمین به وجود میاد یا از بین میره آدما میان میرن استوری هم نمیشه اینا ممکنه رو بهش میگن ممکن که یه روزی نبودن بعد موجود میشن هیچ نداره بعدم معدوم میشن دوباره واسه میشکلن یک نوع وجود دیگه هست که رو بشه کن واجب الوجود یعنی وجودی که باید باشه که نمیشه ما و اون وجودی که تمام این موجودات ممکن از اون وجود سرکشم سرکش میگیرند و او واجب الوجودیست یکی هم میشه و در حقیقت، در فلسفه و هم در عرفان، میگن ما نمودیم. ما اصلا بود نیستیم. با که لحظه پیش نبودیم. لحظه بایدم نیستیم. یک لحظه هم نیستیم که در تاریکی بگذاره شهریار توی اون شعر سنگ مزارش میگه که از این خلعت خاکی کال نام، نه تاری به جامعان دیگر من از شکر احسان تو بر نگردم خدایا مرا بارها آزمون چه چه چه بسازم به سوزی که از آتش بی نخواهد به چشم کسی را دودی بعد میگه که بگیتی به غیر از نمودی نبودی بگیتی به غیر از نمودی نبودی برفتی که از ما نماند نمودی وسیدامنش و حکمتامون تبدید که اجل که از دراغمت نبخشید سود چه سود از می که در فکر نباشد نه آقاق چنگید نبول گلپانگی بودی نگویم که مردن بواهیست یا آقاق بلی مرگ جواهان نبودید خیلی چیز قشنگی ساخته به سنگ که خیلی شعر زیباییست و این همین نمود و عقود و نام اونجا هست میگه تا جهان ممکن است یعنی تا اس که جهان از مقوله ممکن وجود جانش با همه سرها بر آستان شد هر چه خواهد که آورد در چنگ دولتش در آن مباد در اینا دعاست و مرسوم این بوده است که وقتی کسی سخن گفتن با شاه رو ابتداء می شروع میکرده اول باید با دعاست الان گفته های ما هم دقیقا با دعا شروع میشه با دعا هم خط میشه وقتی میریزیم میگید سلامون علیکم یعنی سلامتی و تندرستی با شما باید بعد که میرید میگید خدا حافظشون دعاست. دید. با دعا شروع میشه با دعا هم خط میشه مال چون دعا خط کرد برد سجود برگشاد از شکر گوارش او. گووارش که معربش هم جووارشه به معنی شربت‌های طبی است شربت‌هایی که حالا می‌گن اینا روشون گووارشه و انواع اقسام داشته اینا بیشترم طب و موس طب گیاهی بوده جز شربت‌هایی که می‌ساختن یک کم شربتی بود کرش بود درج می‌کردن گوارش اود شربت خوشبویی تالیمان نمیدونن برای چه مرضی میدادن ولی مقصودش این است که یک لفظ شیجینه، خوشبویی مثل گوارش اود رو از شکر خودش یعنی از دولب خودش باز کنند گفت و از شرم در زمین میدید شرم هم جز آداب دلبریه بانوان جوان اندک سال شوی نادیده است گفت از شرم در زمین میدید آنچه زن کس نگفت و کس نشنید که شنیدم به خردی از خیشان خردکاران و چاق خردکاران یعنی نازک بینا و دک... کسان که دک که ز قصر بهشت بود زاهدزنی لطیف سرشت کتبانو کد یعنی خانه خانه هم یعنی اتاق هستن در حیه این کد به صورت کده پسوند به کار میرفته مثل می کده بوت می کده یعنی میخانه بوت یعنی بوت خانه آتش کده اخیرا دانشکده هم ساخته بود که اولم اون باهر می ساخت مجلده درست کرد به نام دانش اوایل اوائل مشروطه و اسجورش دانش دانشکده به بیاس آتش کده و بط کده و بعد دانش کده رو برای مبتعالی به کار بردن این به صورت پساونده به صورت پیشاوندم و... پیش کد خدا و کد بانو یعنی بانوی خانه و آقای خود میدونی که اگر قدیم خیلی پروپله که دیاد نبوده وز وزی نداشتن مردم یه اتاق بوده هنوز تو دهات همتون رو گیرم همتون رو یه اتاق بوده بابا مرد که با زنش رو بچه هاش سه تا چهار تا پنج تا هر چند تا بچه تو یه اتاق میخوابیدن همونی که های گاو خرشون هم میوردن بعد این که پسر بزرگ میشد یا دختر بزرگ میشد دختره میخواست شوهر کنه یا پسره میخواست زن میگیره دیگه این پسر با زنش که نمیتونست خاطر اینا بخوابه یا دختره با شوهرش که نمیتونست پیش بانایش یه اتاق تازه به اینا اختصاص میده بنابراین اون خانم میشد که مانو یعنی بانوی اتاق آقا میشد کت خدا یعنی صاحبتونه صاحبتون به همین دلیل کت خدا شدن در عدب وارسی یعنی زن گرفتن عبید زاکانی میگه است مجرد عبید زاکانی حریف خاجگی و مرد کت خدایی میسی نهل زن <تصفيق> اون رئیس ده رو قایدتاً باید بشه بگن ده خدا نه کت خدا ده خداست کت خدا یعنی صاحب اتاق کد بانو یعنی بانوی یه اتاق یعنی زنشو بردار کد خدا هم یعنی مرد زن دار مردی که یه اتاقی برای خودش داره تازه کد بانوان هم قصر بهشت بود زاهد زنی لطیف سرشت آمدی در سرای ما هر ماه سر به سر کسوتش حیر سیاه یه خانومی بود این چهازاد خانم میگه میگه یه خانومی بود هر ماه اومد در سرای ما و تمام لباسش سیاه بود باز جستند که از چه ترس و چه بیم در ثوابی تو ای سبیکه ی سیم سبیکه یعنی زر و به قالب ریخته شده یعنی شمش سبک یعنی قالب کردن به قالب ریختن یعنی زر و این یعنی میگن سبک شعر پلان کس یا سبک نسلش پلانه یعنی نوع قالبگیری کلام و سبیکه یعنی ذراسیمه به قالب ریخته یعنی شمچ سبیکه سیم شمچ نقره قانون میگن به علت زیبایش باز جستند که از چه ترس و چه بین در سوادی تو یعنی در سیاهی. از سیای سبیکه سیم بهکمارا به قصده یار شدیم بین سیاه را سپیدکار شدی فیدکار شده توضیح علت این سیاه خوشی تو توضیح هستی باز زنیک خواهی خوش معنی آیت سیاهی خوش آیت آیه یعنی نشانه دیلوند که آخوم داره میگن آیت الله یعنی نشانه ذات حرف بله چیزی کرافه باز گویز نیک خویش معنی آیت سیاهی خویش اینجا اشاره ماست که این سیاهی سمبولیه این نشانه است این سیاه خوشی تو از یه سرگذشتی اینو برای ما بگید. زن تو از راستی ندید گذیر گذیر یعنی چاره گفت که احوال این سیاه حریر چون که نا باز نگذارید گویم ارزان که باورم دارید که وقت گل نمی حالا میگم چشم من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم خوشنود یعنی راز خورسند یعنی پانه هیچ کدومشو منی خوشحال نیست. حافظ میگه در این دنیا اگر ایشیست با درویش خورسند است خدا یا منعم هم گردان به درویش بیشید یا یعنی خناهت خشنودی هم یعنی رزا رزا هست و ما ساختیم رزایت جلیس جعلیست در عربی وجود نبریم در عربی رزا من کنیز فلان ملک بودم ملک بودم که از اون گرچه مرد خشنودم ملکی بود کامگار و بزرگ میمنیداد میشتابا گرگ رنج ها دیده باز پوشیده و از تزلم سیاه پوشیده فلک از طاله خرمشانش خانده شاه سیاه میشان. اینو چیزی ندارید توضیحی ندارید داشت اول زی جنس پیرایه پیرایه یعنی زینت و زیور داشت اول جنس تیرایه سرخ و زردی عجب گران مایه در زن فوضی عرض بکنیم خدمت شما که در وقتی که جامعه جامعه طبقاتی بوده لباس رنگای خاص داشته یکی از مسائلیست که شاید خیلی جالب باشه برای شما بشنوید دیده بودی که دهخان ها توی دهات قبای کهباسی روشدن و آبی قبای کرباس آبیرن اولا سه هزار سال تا این تصویرای برجسته خانشی رو قبای لباس رو نمونه یعنی همون بود دو هزار سال این لباس رو بود بعد ممکنه شما پیش خودتون فکر کنید خب که خب کرباس برای اینکه ارزون ترین پارچه است آبیه برای اینکه لاجورد و نیل و اینا هم عرضون ترین رنگ ممکنه اینا هم برای اینکه تغییر بودن، نداشتن رنگ آبی میکرد اما لباس طبقه دهقان رنگش آبی بوده و این دهاتی هزار سال بدون اینکه اصلا بفهمه که قضیه چیه پدر بر پدر همینجور این لباس آویرنگ رو پوشیده تا مرده بعد پسرش پوش همینجور رو لباس روحانیان سفید بوده او بدان سفید می پوشیدن و می پوشیدن که می پوشیدن که هم می پوشید. لباس سرح و زرد لباس جنگی ها بود. لباس سربازان و نظامی ها و ها. و این یه قدری واقعا شگفتنگیزه توی تعذیه عشقی سرخ می بوشن و خوری و یزید و اینا لباس سرخ می و این معنی داره، اینا همه مفهوم داره بسیار از این مفهوم ها رو ما بعد یادمون میره و نمیدونیم مثل همین لباس چیزا مثل لباس قبا آبی بهخانا که من خوب قبا آبی تنشونه فکر میکنم تو ارزونه ولی نیست اینجور این راست از خاطر رفته ولی با ادخوا مثلا کتاب قدیمی بیدیم که نه سرخ و زرد من بیدیم که میگه پادشاه سرخ و زرد میکوشید برای اینکه از یک سور رئیس قوای نظامیه این دلیلی که داشت اول زی جنس تیرایه سرخ و زردی عجب گران مایه چون گل باق بود مهمندوست خنده میزد چون سرخ گل در پونت روشه میگن خانه خانهی محیا داشت که سراغ روی در سرعیه داشت سراغ واسه سه نقطه یعنی خاک خدا بیا مرز و به عربی میگن تا و سرا تا و با تای معلف تای معلف و الف و تا و یعنی پاکیزه بود از هم طيب و طاهر تا و سرا هم واسه سنختو یعنی خاکش یعنی خاکش پاکیزه بود میرج میزدا میگه خوب پس کردی عاشق شدن آیین من است این به من ارث رسید از بدرم تا و سرا سرا یعنی خاک و سریا اسم مجمع الكواكبی است اسم گروهی از ستارگانه که به صورت گلوبند یا به صورت خوشه هست و سهرگاه در ایران البته نه در اینجا سهرگاه در کنار افق از کنار افق شرق میاد بلا یعنی طلوع سریا در در افاق ما در ممکت مال نزدیک شدن صبحه همون ستاره است که پربین هم بهش میدید خوشه پربین آسمان گوب مفروشین عظمت کندر اش خرمن محوه جوی خوشه پروین به دو جو خوشه همین است که بهش اقد یا هم میگن اقد یعنی گردم بند سوراییان، اقد سوراییان گردن و سریا پروینم هم بهش میگرد وشون در برج سوره در برج گاوه دوبامین برج فلکی است به همین دلیل که حیام میگه که گاویست در آسمان و نامش پروین گاو دیگه این در زیر زمین میگفتن زمین در گاوه گره هست و چشم خردوین بگو آی زیر زبر دو گاو مشتی خرفید هر که این سویا از سراب سریا یعنی از زمین و آسمان خانه، ای معیا داشت که از طر در سریا داشت. خان نهاده به ساعت گسترده به ساعت از بست و گشادن. گشاده. که زمین میگ زمین گشاده به ساعت این چیزی که پر میکن. خان نهاده به ساعت گسترده. خادمانی به لط پرورده هر که آمد لگامگیر شدن دهنه عصف شمی گرفتن معمولا برای خدمت کردن دهنه عصف می گیرن عصف برن تبیله ببندن آقارم برن خونه بگیر هر که آمد لگامگیر شدن به خودش یعنی به شاه میهمان پذیر شدن چون به ترتیب خانه به اون قاعدهی که بود صفر گذاشتم گذاشتند براش در خور پای نوزل دادندش نوزل یعنی پیشکشی چیزی که به کسی میدن حدیه توفه سعدی میگه که سر میروم که در قدم اندازم اشیز شو در مندم هنوز که نوزلی محققر است نوزل از همون نوزوله یعنی پیش پاش میگذن چون به ترتیب خان نهادندش پرخور پای نوزند دادندش شاه پرسید از رو حکایت همز گربت هم از ولایت فیش قصه شو هم از جاهایی که دیده یعنی غریب بود در اونجا جاها هم از جایی که از اونجا اومده یعنی ولایت خودش آن مسافر هرانشه گفتید دید شاه را قصه کرد و شاه شنید همون ارزای حس کنچرافی که به همه عمرش برای این قرار گذاشت تا نشد عمرش از قرار نگشت بعد میگه یه دفعه شاه ناپیدا شد مدتی گشت ناپدید است ما سرچ و سیمارگ در کشید از ما سیمارگ هیش وقت دیده نشد انقا و سیمارگ میگن که پنهانه کسی ندیده شد. میگه که حافظ میگه وفا مجود کس بر سخن نمیشه نوی به ز طالب سیمرغ مرگ کیمیا میباش اونی بی خودی سرچ و سی سر مرگ در کشید از ما چون بر این قصه برگذاشت بسی زونچ و نشان نداد کسی ما روزی از انایت بخت آمدان تاشدار بر سر تخت انقا ویرسیون عربی سی مرگه در اقیقت همون که در فارسی روش میگن سی در عربی مرغ شبیه او دارن که میگن انگاه و بهش میگن انگاه های مقربه مثل مغرب می ولی مغرب می یعنی انگاهی که دور است از دسترس و در قربت دور از ماست ناگهان روزی آمد از انایت بخت آمدن تاجدار و سر طب از قباب و کلاه و پیرهنش پایتاساش سیاه کنش وقتی برگشت پاچه که سرخ و زرد می پوشید لباسش سیاه تا داشت تیز خوشی کرد بیمصیبت سیاه پوشید. در سیاهی تو آب حیوان زیست قصه آب حیمان رو قبلا به تفصیل اینجا عرض کردن پیش ما اول بغدان گفت دستش این صدا حالا تکرار دید. دوستانی که نمیدونن از اونایی که میدونن <تصفح> <به> نصر <تصفح> سودی در سیاهی تو آب حیوان زیست کس نگفتش که این سیاهی چیست تو حد نمی‌توت شبی از مصطفی و دلداری کردمون قبله را پرستاری بر کنارم نهاد پای به مهر میگه پاشو میمالید بر کنارم نهاد پای به مهر گله می‌کرد از اختران سپهر تا بین چه ترک تازی کرد ترک تازی یعنی تاخت آوردن ترکا ترکان چند بار گفتم اینجا که در ادب فارسی وقتی میگیم ترک عموم مغول رو میگیم و تاخت آوردن مغول معلومه یعنی بعد از این تاخت دیگه هیچ چی باقی نمونید اینی که ترک تازی میگن یعنی تاخت و تازی که از دنباله بود یک چیزی اصلا باقی نمید کاسمان بیم چه ترک که با تو خسرو بیگه چه بازی که؟ از سواد ارم بریم برایم سواد یعنی سیاهی و سیاهی شهری هم که از دور دیده میشه بهش میگن سواد شهر و مولای متقیم سفارشی فرموده است به مردم که علیکم به سواد العظم یعنی بر شما باید که در شهرهای بزرگ زنید سواد العظم یعنی شهر بزرگ و اما ارم، ارم اسم باقیست ارم ذات الاماد گفتند که یه پادشاهی به نام شداد از قوم عاد قوم آدم تفصیلی که ازشون آمده قوم خیلی بلند قامت خیلی خیلی بلندی بودن عادی که میگن این آدمای خیلی دروشتر از حد مهمون قوم و اینا در جنوب عربستان زندگی میکرد قوم آد پادشای داشتن شداد این یکی من میخوام به بهشت مثل بهشت خدا و بعد باقی میسازه به نام باقی ارن حافظ میگه مفروش به باغ ارم و نخافت شداد یک شیشه و نوش لبی بر لب کشت شداد میگه اون باغ رو می سازه درختانش همه از نمیدونم اون و انبر بودن برگاش از زمرد بوده میله هاش از یاقوت بوده سیود سنگیزه هاش همه جواهرات بوده گوش با انبر بوده چه چه چه مفصل این اینه میسازه به به اصلا به همچشمی بهشت و سالها طول میکشه تا این باق تمام این باق تمام شهه روزی که میخواد بیاد قبل از اینکه پاش برسه به اون باغ ملک الموت میاد و وظیفه خود انجام. قبض روح میشه قبض از رسیدن به اون باغ ما میگن که خداوند تبارکت آیا اون باغ رو از نظر مردم زمین پیمهان کرد و بعد گفتن که یه شخصی در دوره اسلام بگه اینه است یه شخصی نام عبدالله ابن عبیق الابه با قاف این راه پیدا کرد به این با باغ ارم و دید و بعد که آمد و گفت که من یه چن جایی دیدم و چه و چه و فلانه فلان جاست. رفتتر دیدم که چنین جای نیست بعد به یکی از علمما گفتن گفت بله گفتن در اخبار آمده است یکی خواهددید برای تایید این خبر که چنین محلبی در قرآانی کنیم آمده در قرآن آمدهان الان ترکییف فعل ر بود که به آد ام از ذاات اعماتلت هم یخلب مثلعافلبلات سود ای هست. در قرآن این سوره های کوچه که آخر قرآن به باق ارم است و اسم شداد درش نیامده ولی خوب مهاد اینا آمده است گفتن برای اون ذکری که در قرآن کریم مهاده برای اینکه تعییل میشه یکی از امت حضرت مصطفی خواهد دید این رو که بیاد و بگی که این بوده از سواد ارم اینجا مراد بهشته جای افسانه. جای از سواد ارم برید مرا در سواد قلم کشید مرا سواد قلم مرکب دیگه سیاهیه بعد میگه هیچ کسم از نپرسید کس نپرسید که این سوا، سواد کجاست بر سر سیمت این سواد چراست چرا توی که سفیدنگی این سیاهی رو پوشیدی پاسخ شاه را سگالیدم، سگالیدن یعنی اندیشیدن بیشتر به معنی اندیشیدن بدی. ولی اینجا معنی اندیشیدن بد نیست، معنی مطلق اندیشه است. پاسخ شاه را سگالیدم، روی در پای شاه مالیدم گفتم ای دستگیر غمخاران، بهترین همه جهانداران برزمین یارهی چرا باشد که را به تیشه بتراف جد؟ یاره یعنی یارای یارا یعنی قدرت یارای این فرمدران یعنی توانای این فرمدران یاره یعنی یارای یعنی کسی روی زمین که این قدرت رو داره که آسمون رو به تیشه بتراشید؟ یعنی به شما کسی از بندگان شما که نمتونه بپرستید خوربان چرا سیاه پوشیدید؟ مگه خودتون بگید؟ بر زمین یاری که را باشد که آسمان را به تیشه بتراشد باز پرسیدن حدیث نهفت هم تو دانه یا هم توانی بود و هم خودت میتونی بپرسی هم خودت میتونی جواب بدی فقط تو میتونی ما که نمیتونی سوال کنیم صاحب من صاحب بینید دوست و رفیب مالک نیست من که حال ما بکنیم صاحب یعنی هم صحبت مصاحب دوست رفیق صاحب من مراچون محرم یافت لعل را صفت و نافه را بشکافت لعل را تا سوراخ نکنن نمیشه به نزان گردنش اعرضش ندیش میشه نافر هم تا نشکافن مشک بیرون نمیاد که ازش بوی خوش گدیرن نافر را باید تا مشکش بیرون بیارن دیگه حافظ میگه مجدگانی به دهی خلوتی نافه صحرا صحرای قطعا مشکی مشکینات کسی در خلوت نافر باز می کنید لل را و نافر را کافت یعنی شروع کرد به صحبت گفت چون من در این جهان داری خوب گرفتم به میهمانداری از بدونیک هر که را دیدم سرگذشتی که داشت پرسید روزی آمد قریبی از سر راه قریب یعنی دور دور افتاده به خلاف قریب باقافت که من این نزدیک روزی آمد قریبی از سر راه کفش و دستار و جامعه هر سه سیاح. نزل و چون به شرط فرمودم خواندم و هشمتش بیابسیم کنم گفتم ای من نخانده نامه تو نامه تو رو نخوندم یعنی کسی که من خبر از وضع تو ندارم نمیدونم تو چی هستی سیاه از بحر چیست جامعه تو چرا زاهرام که مرسوم نبود اون وقت گفتم که هر کسی به حالت طوقاتیش لباس میخوشتی لباس به اختیار کسی نبود که هر رنگ ماده ما دفشی بگیرش کسیم چرا سیاه پوشتی؟ سیاه هم لباس ماتمزدگان بود اونگه گفتم ای من نخونده نامه تو سیاه از بهر چیست جامعه تو گفت بگذار بلپومد. از این سخن بگذار که سیمر کس نداد خبر میگه از سیمر کس خبر این که فلش کن گفتمش باز گو بهانه مکی خبرم دست قیروان و زقیر قیروان آخرین شهر مغرب بود در مراکش فعلی کنار اونوس اطلس است به طوری که بعد دریایی بوده که فکر کردن که انتها ندارید یه یعنی اویانوس رو تا کشف امریکایی که نرفتدن اون طرف که قیروان آخرین, آخرین آبادی بودی که در بلاد اسلام وجود داشت. به همین دلیل گاهی به جای شرق و غرب آلم میگن از قیروان تا قیروان قیروان تا قیروان یعنی از این سر تا اون سر آن قیروان و زقیر یعنی از این سیاهی خبر بده و از راه دور خبر بده گفت باید که داریم معذور با از مخوام خارزویست این گفتن دور زین سیاهی خبر ندارد مگر مگران که این سیاه دارد و بس هر لابه های فنهانی من اراقی و او خراسانی مخالفت اراقی و خراسانی معروف بوده یکی از دلایلش موده که زبونشون دوتا بوده. یعنی در عراق که مرکز ایران مرکزی بود و ایران غربی پهلاوی حرف زدن این طرف هم دری حرفی زدن اولا زبون هم دیگر نیکنه نف... نف... نف... یک کبیر هم وسط دوم که رقابت های سیاسی و قومی و این حرف داشتن نزویر این عراقی و خراسانی رازی و مروزی یعنی اهل ری و اهل مرد یعنی در قایت افتلاف خواه. نه در عدب فارسی هست من اراقی و خراسانی یعنی هر حرف اون نمیگرفت با هم توافق نمیتونست کردمش لابه های پنهانی من اراقی او خراسانی باقی از هیچ لابه در نگیرم هیچ خواهش تمامنه هرچ پرده از روی کار بر نگرفت. چون زهد رفت خواستایی من وقتی خواهش من از حد بگذاشت شهر مشه آمد به براد گفت شهریست در بلایت چین شهری ها راستین چه قل نام آن شهر شهر مدرومشان تعذیت خانه سیاه خونشان یعنی از آخونه دید. هر که از آن شهر باد نوش کند آن سوادش سیاه خونش کند گفت شهریز شهر مدرومشان در چین هر کی اون شهر بره سیاه پوش میشه و من بیش از این اطلاعی به تو نمیتونم بگم آنچه چه در سرنوشت آن صلب است صلب یعنی جامع سلب یعنی لباس آنچه چه در سرنوشت آن صلب است گرچه ناخانده قصه ای عجله با اینکه کسی نخونده اون نشکیده ولی قصه شگفتنگیست اگر به گردنم گردن هم بخواهی صفت اگر بخواهی گردن هم سورا که من بکشی بیشتر زین سوهن این سوهن گفت رخت خر هست رخت این لوازم. به خلاف اون که حالا فیار جامعه رخت این لوازم. رخت خواب یعنی چی؟ یعنی پتو و لاف دو رخت خواب رخت صفت یعنی خورجین رو چندین واسه. این سخن گفت و رخ برخرب است آرزوی مرا در اندر بس. آرزوی منو ناکام گذاشت در وز چون بران آستان گنوگ سران داستام گوی دور شده بران قسط گو رفت و قسط ناپیدار حالا بینید این بیم آن بود که من شدم شیده میگم بیترستم دیبونه بشم اصلا که چرا این نمیدونم شیده برانی آدم دیبانه است در ابری شوته میگن به دیوانه در همدانم همین لغت چون یهودی اون زیاده در همدانم شوتر رو میدونن همه دیوونه و در کل هم میگن شید بازم به همین معنی و شیدا از همین. همینه قسطگو رفت و قسط نافیدا بیمان بود که من شدم شیدا چند از این قسطه جستجوب کردم بیدق از هر سوی خروب کردم بیدق معرب کلمه پیاده است مهره شطرنج، مهره پیاده شترنج و پیادق پیادق پیادق, پیادق، بیدق یعنی پیاد. چند از این قصه جستیجون کردم، بیدق از هر سوی فرو کردم یعنی از هر طرف پیاده ها رو روندم یعنی خواستم اطلاعات بگیرم بیش از آن کرده بود فرزین بند فرزینم اسم وزیر شترنجه شهدی میگه پیاده آج چون عرصه شترنج به سر میبرد فرزین میشود یعنی بهتر از آن میشود که بود اما پیادگان حاج بادیه به سر بردن و بتر شدن وزیر شترنج از همه طرف به هر جهت و به هر مقدار میتونه حرکت خیلی افتیاراتش بسید میگه از همه طرف فرزین بند کرده نمیشود راهی پیدا نمیشد بکنید که اطلاعات بیگش از آن کرده بود فرزین بند که برام قلعه برشدم به کمند نمیشد به وسیله اطلاعاتم مگر اینکه خودم پاشم برم دادم اندیشه را به صبر فرید فکرم میگه به فری فرید می دادم تا شکی دلم تا شکی دلم نداشت چکی چند پرسیدم آشکار هفت این خبر کس چنان که بود نگفت آقابت مملکت رها کردم خیشی از خانه پادشاه کردم بردم از خانه و جامه و جواهر و گنج آنچه زندیش باز دارد رنج اون مقداری که خیال آدم راحت نگه داره جامه یعنی پارچه جواهر و گنج یعنی وسایل پول هلچی اون چه خیال آدم راحت میکنه برداشتم نام آن شهر باز پرسیدم و رفتم و آن چه خواستم دیدم چی دیدم؟ شهری آراسته چو باغ ایران هر یکی از مشک برکشیده علم مشک سیاهه این مردم هم سیاه پیکر هر یکی سفید چو قیر چو شیر همه در جامعه سیاه در سرای فرو نهادم رخت سرا کمانی که الانم در بازار هست منی پاروان سراس سرای همیر سرای کنن هجره داره میگن کنش میگه منم وسائلم با اون تاجر چیزی راخت دارم دیگه میگه در سرای رختم و لوازمم اونجا پاینا بودن بر نهادم ز جامعه تخت, تخت تخت تخت جامعه یعنی قباره پارچه تخت هم تخت است. یه تخته جامعه یعنی یه قواره پارچه برنامه آدم از جامعه تخت به تخت جست محوال شهر تا یک سال یک سال اونجا تغییرات کرد کس خبر وان نداد از آن احوال هیچ کس هر کس میگستم چرسیا چوشکی راشم میره جواب نمید کس خبر ما نداد از اونبال چون نظر ساختم ز هر بابی دیدم آزاد مرد قاب بوده فاب آدم خوب دیدم خوبروی و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته از نکویی و نییکرای او راه جستتم به آشنایی چون به هم صحبتیش بستم به کلاه آریش تمرب کلاهداری اصلاً به معنی پاد جانس اینجا معنی پذیرایی کردم سعی کرد کمر بستن معنی آماده شدنه یعنی آماده شدم که این وضعش خوب بکنه چیزایی بهش بدم برای کار خودش. به کلاهداریش کمر بستن دادمش نقد های تازه یعنی سکه که تازه سکی زده شده نو این پنی ها رو میبینید؟ نو برق برق دادمش نقطهای رو تازه، چیزهای برونزه اندازه روز تا روز قطر رو شب سودن آهنی را به زر برندودن مرد غصاب بوده دیگه عوام و ناس بوده بیگه من خیلی بیش از این که اون بود به اون یکی کردم مثل آهنی رو که پوش اندود طلا بود کردمش سید خویش مویی به مویی میگه خورد خورد اینو سید کرد. گه به دیبا و گه به دیبا روی گهی گاهی پارچه های عبدیشنی این یعنی پارچه و وسیله گاهی هم به کنیز منیز وسائل و هر حال مرد غصاب از آن زرفشانی سید من شد تو گاه قربان آنچنان کردمش به دادن گنج آمد از بار آن خزانه برم گفت به ستوهش آوردم هم دیگه بهش بخشیدم اینا که این شرمنده شد کاملا مرد روزی من را به خانه خیش کرد برگی برگ یعنی وسائل یعنی تکلح وسائل فضیر. کرد برگی زرست و عادت پیش اولم خان نهاد و خورد آورد خدمتی خوب در نورد آبر هرچه باعث بود بر خانش بجز از آرزوی مهمان. بگه همه چی تو سفرش بود جز اینکه جز آرزوی مهمان یعنی هیچ چی نبود که آرزو بکنه و سر این سفره نباشه راه آرزو رو به مهمان بسته چونز هر گونه خوردها خوردیم سخن از حد دری فرو کردیم میزمان چون کار خان پرداخت بیش از اندازه پیشکش ها ساخت بانچه من دازمش به هم پیده است. پیش پیشم آورد عذر خواه میشه همه این که شده هم آورد گوهر گفت چندین نورد گوهر و گنج بر نسنجیده هیچ گوهر سنج که سابقه نداره کسی این همه چیز رو کسی بده من که قانع شدم به اندکسود صد توانگ گوش میکشم صد ده در بیارم به این دهتان بخورم من که خانه شدم به اندک سود این همه دادن هم زه برچه بود چیست پاداش این خداوندی؟ بزرگواری که در حفظ من کردی چی میخوای از من؟ پوک بکن تا کنم کمر بندی بگو چی میخوای؟ من کمرو بندم آماده بشم جان یکی دارم ار هزار بود هم در این کفه کم بود بگه یه جون دارم من ولی اگه هزار تا جون هم داشتم با این همه خوبی که تو به من،, من کردی بازم ارزشش کمتره میگی من باز بهش تعارف کردم گفتم ای خاجه این قلامی چیست اختیار داریم چه رشکست نفسی میکنین گفتم ای خاجه این قلامی چیست پخته در پیش مای خامی چیست در ترازوی مرد با فرهنگ این محققر چه وزن دارد و به غلامان دست پروردم به کرشمه اشارتی کردم قبلا تد تعلیم قرار گرفتن غلامان اشاره کردم تا دویدند و از خزانه خاص آوریدند نهت های خلاص خلاس یعنی خالص رفتن باز پولای خالص آوردن زن گرانمایه نهت های درست درست درست هنی سکه تلاس در خود الان می‌گیم پول خورد پول خورد <تصفح> یعنی پول ریزه بعد پول درستو قدیم دینا رو شکن درست زر دو درست زر به دست من ده. یعنی اون دو درست از گران های درست بیش از آن دادمش که بود نخوز مرد کاگه نبود ز نازش من نمی که داشت قذر میخواست که برچی نمی من خوندیدی من دو براورش کردم بیش از دو براور کردم میکنه این, این قافدگیست این که از روش من آگاه نبود در خجالت شد از نوازش من. گفت من خود زبام داری تو نرسیدم به هر تو دادیم نعمتی دگر باره جای شرم است چون کنم چاره گفت من از خجالت اونچه چه داده بودی نمیتونستم در میام تو دوباره من یه چیز دیگه دادی من چه میتونم چاره این کارو بکنم؟ داده تو نزان نهادم پیشتار رجوع اخترت به داده میگه برای این نعی که تو دوباره بیگه بیشترش کنی زان نهادم که به این دلیلی آوردم زان نهادم که اینجنین گنجی نبود بی جزا و پارنجی این همه که تو داری همه پور میدینا لابد یه قصدی داری یه خواهشی داری یه چیزی میخوای جزایی میخوای پارنج وقتی کسی میامده به خونه کسی پارنج یعنی حق القدم در حیره هم پارنج کس آدم بزرگباری که میامده به خونه کسی که افتخار میده به اون مثلا شاه میامده به خونه ی وزیر که اسباب سرفرازی افتخار رو داره یه چیزی به عنوان حدیه مثلا هزار دینار پیشگش میگرده اینه میگودم پارنجو زن نهادم که این چنین گنجی نبا بی جزا و پارنجی چون تو بر گنج گنج افزودی من خجر گشتم تو خوش برم اگه تو راضی هستی من خجالت برم حاجتیگر بنده هست بیار برنه اینها که داده ای برد میگه دیدم حالا وقتشی که مسئله رو مطرح کن چون قریدل شدم به او گشتم آگه از او باز گفتم بدون حکایت فیش قصه شاهی و بلایت فیلمش که چه معنی بدین طرف راندن دست بر شاهی افشاندن تا بدانم که که زیم شهرن چه سبب که از نشاه این به چرا کنشم؟ جامعه های چرا سخت ناراهد مرد غصاب این سخن شمید گوزپندی شد از ساعتی ماند چون رمیده دلان نیست از این هفته تا هفته باید تا ساعتی مان چون رمیده دلان دیده بر هم نهاده چون خجلان گفت پرسیدی آنچه نیست سباب. درست نبود این سوال جا. گفت پرسیدی آنچه نیست سباب به همت آنچنان که هست جواب میده تو چیزی رو پرسیدی که درست نیست ولی من جوابشو اون چیزی میدم که هست شب چو امور فشان بر کافور کافور سفید انور خاکسته میدونی این شب شد شب. شب روز رفت شب چو امور فشان بر کافور گشت مردم زراح مردم دور گفت وقت است. کانچه میخواهی بینی و یابی از بی آگاهی خیز تا بر تو راز بکشایم صورت نانموده به نمان برایش بریم تا بگم قضیت چه برای این سخن گفت و شد زخانه برون شد مرا راه راه نمون او همی شد من قریب از پس و از خلایه نبود با ما کس چون پری آدمی برید مرا سوی بیرانهی کشد چون در آن منزل خراب شدیم چون پری دو در نقاب شدیم سودی بود در رسن بسته رفت آوت دو شما هست بسته کرده رسن در آن پرگار اجده به گرد سله مار دور این کنابی بود مثل اجده که دور سبد مار حلقه زده گفت یک دم در این سبد بنشین جلوهی کن بر آسمانو زنین تا بدانی که هر که خاموش است از چه معنی چه نسیار آنچه میده آن پوشیده شد زنی که بدت ننماید مگر که این ثبت این سبد به سرور تو نشون. چون دمی دیدم از خلال حالی در نشستن در اون سبد حالی چون تنم در سبد نواق گرفت سبدم مرغ شد هوا گرفت. تا رفتن تو سبد سبد راست در بالا به تلاسمی که چمبرساز بر برکشیدم یعنی برکشید مرا به چرخ چمبر باز. آن رسنکش به لیمیاسازی لیمیا علم همین آچوبات و کارهای شگفت انگیز و ایناست اون رسنکش به لیمیاسازی من بیچاره در رسن بازی رسنباز هم همون یعنی آدمی که این کارای آجو باتی نید رسن به گردن چست رسن سخت بود و گردن سست این که کناب بود گردن منم شد بیچاره بودم دیگه چون اسیری به بخت خود محجور رسن از گردنم هم نمی شد بود من شده برخره به گردن خورد خوره خوره آوازی که از فشردن حل برمی آید یعنی من با گردن شکسته مشکول خور خور کردن بودم و خفه شدن من شده بر خوره گردن خورد خر وقتم شد و رسن را بود هر وقت من رد رسن من بود گرچه بود از به تاب تنم رشته جان نشد جزم رسن من با خیلی از این رسن ناراحتم ولی تمام زندگی من بسته اون رسن بود بود میلی فراوریده به ماه که زید بردیدنش فتاعت کلا میخواستی سر جنگاه کنی کلای آدم میفتاد چون رسید آن سبد به میل بلند رسنم را گره رسید به بند چه از ستونباله رستنم دیکی گرهش به بند سید قموشت به گوانش را کارسازم شد و میگوی مردای که ما رو بایشتو تو سبد راش کشید را پارسازم شد و مرا بگذاشت کردم افخان بسی و صوت ندارم زیر و رو در جهان دیدم خیشتن را بر آسمان دیدم. آسمان بر سرم خسون خونده من معلق چو آسمان موندیم بزنید باشه حاله کنم لندن و خبر دادن که استاد دکتر عباس زریاب خویی از قزلای درجه اول ایران و رئیس سابق دپارتمان تاریخ در دانشگاه ادبیات علوم انسانی متاسفانه درگذشت. من البته خیلی من ناراحت شدم ولی به هر حال تلفن برای این بود که من چیزایی بگم بر باره اون بزرگمرد و حالا اینجا اینا رو میگم برای اینکه شاید یاد خیلی از او باشه با چیزی نوشته بشه جهت بنده در جوانی یعنی در از 19 سالگی در مجلس شورای ملی کار میکردم در اداره تون دی و در مجلس سورای اداره این بود نام اداره کتابخانه که نه از کارمندان مجلس کسی سوراق این اداره کتاب خانه میومد نه از فکلای مجلس معمولاً عده بودن از پوزلا، استادای دانشگاه، امثال اینا مثل مرحوم استاد جلالدین حمایی مثل مرحوم استاد مدرس رزدی اینا اغلب مشتری های کتاب مجلس بودن می و در کتاب هایم یه عده کاروان بودن که بسیار آدمای خوبی هم بودن همه ارز کنم که بعضیشون وضعیت خاص داشتن مثلا خطات بودن مرحوم ابراهیم بوزری خوشنبیس بود کتاب خونه بود کارهای خوشنویسی کتاب خونه یکی دوتا کتابدار بودن که در سالون کار میکردن برای کسان کتاب نفسر کتاب از گنجینه میووردن میدادن یه چند تا هم کارمن دیگه بودن که در کتاب ها رو سفت دفتر میکردن این کارا ولی با کتاب سر و کاری نداشتن و برایشون کار کردن در کتاب و کار کردن در حسابداری یا ملزومات یا اداره بازرسی فرقی نداشت. ولی کتاب خونه که به مقار زیادی کار فنی احتیاج داره و در گذشته یک کسی رئیس کتاب بود که یوسف اتسامی اعتصام مل پدر پروین این اولین کسی بود که من به خاطر دارم رئیس کتاب بوده و فهرستی هم برای کتابهای کتاب های خطی کتاب مجلس نوشته بود و این این کتاب ها به جانش بسته بود و آدم علاقمندی بود یعنی اهل کتاب برش کردم، فهرستی نوشته بود بعدها چون رو اصلا کتاب سر سرکاری با کتاب زیاد نداشتن آدم های اداری بودن از فوزالا دعوت میکردن در دوره پهلوی اول یه مرد فاضل شیرازی که از طلاب فازل اون روز بود به نام مرحوم ابن یوسف، زیاایدین ابن یوسف دعوت شد که آمد فهرست کتاب خونه نوشت کتاب خطی رو همون فهرست کتاب خونه مرسی هم نوشته بود. و بعد در دوره بعد از شهریور یعنی وقتی اونجا کارم کردم یکی کسی نبود و بعد من چنیدم که یه جوان فازلی به نام آقای خویی که اونجا زریاب هم معروف به آقای خویی رو آوردن خیلی دستمزد بسیار ناچیزی میدادن مثلا هر کتابی چند برون چند ریال میدادن و این کتاب ها رو فهرست میکرد به کار فنی تا می رسید بدون اینکه صمت فرمانده رسمی یا چیزی در اونجا داشته باشه بعد معلوم شد که این آقا مرد بسیار شیرینی است مرد بسیار باذوق است مرد بسیار بسیار, بسیار باکمالی است این بعد در گفتارهایی که با هم داشتیم در مجالس مختلف گفتگوهای مختلف گاهی از زندگیش برای ما یاد می‌کرد معلوم شد که پدرش بقالی بود است در شهر خوی و هدفش هم این بوده پدر که این بچه بره تا کلاس 3 5 چهارم ابتدایی درس بخونه برای اینکه حساب دخل و خرج دکون میگه نگهده رو چیستم که نسی میبرن اینا خلاصه کور سوادی داشته باشه برای این کار میبیاد پشت دکون وقالی بنشینه و قبیه اعتقاد داشت که تحصیل بیشتر بچه رو بیدیم میکنه و خلاصه نمیتون این بچه همون 3-4 کلاس رفته بود در اون زندگی محدود در شهر خوی با دستگاه بسیار محقر فقیرانه پدرش بود و ولی عشق به خوندن رو نوشتن نینا داشت و باید میگفت که من دائم به فکر این بودم که به یه نحوی درس کنم به هیچ راهی برام وجود نداشت، به هیچ نحوی برای اینکه هم باید زندگی بکنم، هم درس بخونم و این نمیشد میگفت مطالعات ممتدی که در این زمینه کردم، بالاخره دیدم تنها راهی که وجود داره اینست که به برم به عنوان طلبه. اونجا پجره هست و هم میدن که بخوابم یه نون خالی هم میدن به طلاب یه چیز مختصری که این نونی بخورم داده میشه و درس هم میشه میگه به هر نهلی بود یه چند تومانی به دست آوردم و سن پونزشون درست ها یکی دیگه بالغ شد دیگه پدرش نمیتونه حرف زور و بزنه و نگه داره بولمش میاد قوم و طلبی میشه در اونجا و شروع میکنه درس هم. چون عاشق خوندن بوده به سرعت پیشرفت می و جز طلاب خیلی فازل میشه. و همون اوایل برای اینکه که وقتی من خویش دیدم سالهای 25-26 مثلا اده اکثر تا سال سی قبل از سال به طور قط اینشون از قوم آمده بود قبل از این شاگرد آقای خمینی بود که در سطح بالا درس می دادن ایشون و فلسفه درس می دادن این دکتر زریاب شاگرد اینشون بوده یعنی عربیت و ادبیت و درشت مقدماتی و درشت های ست و اصول اینا رو خونده بود و داشت فلسفه نده و اون وقت ادب فارسی رو در حد کمال مطالعه کرده بود در همون در همون حجره طلبگی فرانسا رو یاد گرفته بود و پیشبختن لباس آخوندی البته نپوشیده بود یه تحریش خیلی مختصری داشت با عنوان تلویگی از اون چیز خاطرات خیلی هم از اون کار داره بعد میاد تهرون به هر حال به هر حال میاد تهرون رو چون خیلی از لحاظ فکری هم در سطح بالایی بوده میاد یه امتحان مدرسی میده برای اینکه کسانی که امتحان دوره محسوسی بود دوره مدرسی باشون گفتن کس کی امتحانی داد و پاسیگی میگرفت میتونه سپر دانشکده الهیات میاد امتحان مدرسی میده و تپان میشه برق قبول میشه و میر دانشکده الهیات بعد در دانشکده الهیات بهشون اجازه میدادن که برن کلاس شما ادبی رو بگذارون میره کلاس شما ادبی رو میگذارن و به سرعتم بعد نیسانسیه میشه و یه انذارت مدارج تحصیلی کارش درست میشه در دوره 15 هم که از سال هفت شروع میشه مرهوم تقیید داده وکیل میشه از تبریز و میاد به مجلی و مرحوم تخیزاده از نادر وکل هایی بود من میتونم بگم که من هیچ وکیل محلیسی رو در کتاب خونه ندیدم به غیر از مرحوم تخیزاده و از کارمنده هم به غیر از خودم کمتر کسی دیدم که از ادارات یکی بیاد بره در کتاب خونه مگر اینکه از از اداراتش شده باشه که بره پولانکتها بیگیره بیاره کاری از این قبیل مرحوم تخیزاده میامده و میرفته و اون وقت اتفاقاً رئیس اداره کتابخانه مردی بود به نام مرحوم شریفی که مدیکل کل دارایی بود آدم خوب بود ولی با کتاب سرفر زیادی نداشت تا حدی که یک بار وقتی تجهیزات اومده بود گفتم تاریخ ادبیات ایران مال براون رو هم ندید مرحوم شریفی تو ذهنش نمونده بود اصلا صدا کرد آقای زریاب آقای زریاب مونده گفتم ببین جناب آقای تجهیزات چی می‌خوان بهشون بدید من اون تض دو بارث ککتتاب دکتر زریاب داده بود و. باید وقتی که گفتهگو میکنن از اون تضده این بسیار جوون فاضلی است فوق براده در به او کرد و خیلی خیلی خوبه که بعدها داده گفتم ک ذریاب رو چشم کردم به زودیقصه سنا پیش میاد و از کنم که قرار می شود که ملی سنا تشکیل بشه اماراتی در پارستان بودی اماراتی موشه نزدیک که ساختمون مسجد سپسردار اون طرف که امارات کارپردیزی بهش می گفتن امارات مستقل جداگانه بود اون رو میدن دن معلی که دستگاه اداری معلی سنام اتاق رئیس و نمیدونم حسابداری و اون دستگاه اونجا باشه و جلسات سنام در همون سالن معلی شورا تشک در اونجا یک اتاق خالی میکنن کنن اسم چونی زنن اداره کتاب کنه. و آقای زریا هم میشه رئیس کتاب کنه. تو کتابونه یک دونه کتاب وجود البته نه این بود که بخوان کتابونه دو کتاب درست کنم برون تعیزده خیلی علاقه من بود بعد هم در مجلس سنااب بزرگترین گنی یعنی کتابهایی که کامل